خب بسم الله الرحمن الرحيم در مورد رسیدیم اجمار و خوندیم قول واقعا قول صحابه حجته جزء عدل لحاست یا نه این مسئله رو ماترح میکنن و قول الواحد من الصحابة ليس بحجة علا غیره مفرماد و قول ایکی الصحابه حجت نیست بر شخص دیگر قول الجدید بر اساس قول جدید امام شافعی امام شافی رحمت الله علیه در قول جدیدش قول صحابی رو حجت نمی دانند. البته قول صحابی چندین نو داریم قول صحابی که در حکم حدیث مرفوع و توقیف هست اون که دیگه داستان جداست اما اونجای که هم با هم دیگه صحابه اختلاف دارد داستانش دسانش است ولی در اقوال دیگه صحابه ای واقعاً قولش حجت است یا نه میگه قول جدید امام شافعی همین هست که قول صحابه حجت نیست و فی القول القديمی حجت اما قول قدیم امام شافعی همین هست که قول صحابی حجت است اینجا اختلاف وجود داره قولی که ممید قول صحابی البته نه اون اقوال صحابی که حکم حدیث مرفوع یا توقیف رو دارند یا اجماع دارند یا حرفی زدند و کسی باشون اختلاف نکرده هیچ صحابی در مقابلشون اختلاف نکرد اما در دیگر اقوال صحابه گروهی میگوند که قول صحابی حجت است این مذهب امام مالک و ابی حنیفه نومان هست رحمه الله و امام شافعی در قول قدیمش و در قول جدید امام شافعی میفرمایند که قول صحابی حجت نیست روایتی به از امام احمد هم همین هست امام غزالی هم نظریش همین هست و خود نویسنده ورقات البته برای این که قول صحابی گرفته بشه اولایی که هم قول حجت میدونن شرائطی قائل هستند. اولا مخالف با نص نباشه مخالف با قول صحابه دیگر نباشه در این حالت قول ارجح انتخاب میشه این بحثی بود که در این رابطه خیلی خیلی مختصر آمده بود بعد از قول صحابی انشالله میاد بحث حدیث بحث سنت قولی رسول الله صلی الله علیه و وسلم بحث حدیثش میاد اخبار ان باهم خواهیم خان موفق و پیروز باش